شاله نمیشه تا رو و این یوشاد مضاف و یفعال وقتاً به انتنگیدی لایوزن در این عبارت اضافه رو میخوای اضافه لفظی اضافه لفظی محبوب تخفیف و محبوب تحریف یا تخصیف دردش هم اینه که وصف یعنی مشتق مثل اسم فائل اسم مخبول سیغه مبادرته صفت مشبهه اضافه بشه به معمول خودش اضافه بشه به معمول که اینیش اضافه بشه که نبتر نبتر نایفاید اضافه بشه که مقبول اضافه به نایفاید صفت مشبهه اضافه که که اسم فایل اضافه شده به چی؟ فایل. به مفعولش، به فاعلش نیست، اضافه. و ال یوشاب هل و یعل واو واو چرا گفتیم استیناف ما قبلش چیه؟ تخصس اولا اوعته تعریف به لذی طلب انشایی مجبوری بگیم واوش واو چیه؟ استیناف تا عطفه خبر به انشاء نشه چون جمله انی و شابه از چه طریق ما میفهمیم که جمله خبری یا انشایی از جزاش جزاش لا یعزلو ان تنجیره لاش لا نفیت جمله جمله خبریست و گفتیم جمله شرطیه رو انشا و اخبارش را به چه شکل میشناسید به جمله جزاش نگاه میکنیم اگر انشایی بود کل جمله انشا اگر اخباری بود کل جمله و این یوشابهل مضاف و یفعل این ارش یشابه یو یوشابهفل المضاف فاعلش یفعل مفعولش. اگر مشابهت داشته باشد مضاف ما با یفعله یفعلو را شباحت برسونه به یفعلو یعنی مثل اینکه که دلالت بر حال و استقبال میکند یزروو یعنی میزند یک مرد قایب در زمان حال یا آینده مضاف ما هم زمانش زمان حال و آینده باشه وصفن و وصفم باشه یعنی چی باشه؟ مشتق باشه یفعل مفعول یا شابه وصفن حال از فائل حال از برای مزاف. در حالی که اون مزاف وصف است فافای جذاب انتنکیرهی متعلق است به لا یعوزل و لا یعوزل و و زمیر که میخوره به مزاف لا یعوزل این مزاف درست شد انتنکیرهی. این مزاف معزول نمیشود عزل شود عز بگید تنکیری دست بردار از تنکیرش نیست زمیر نای فاعلش و برمیگرده به مضاف ان تنکیریهی متعلق به لای و جمعه لا و کل جمله لای و ذل ان میشه جزای شد و محلا مجزوم 그렇죠 جزاء بعد از فا ای که بعد از فا بیاد در بعد از عدات شرط جزم دهنده میشه محلن چی؟ پشت این فه کیرهی لایوزل یه چیز دیگه هم ثابت میکنه که لای نافیه لای نافیه دارای صدارت نیست چرا چون انتنکیرهی و لایوزل چی شده؟ مقدم شده اگر صدارت داشت این مقدم پس اضافه لفظی کدوم اضافه است؟ اونی که به معنی حال استقبال و وصف هست اگر اضافه بشه از نکره بودن خودش دست بردار نیست یعنی کس به تعریف بگید نمکن ولو به معرفه اضافه شد بگم انه زار بو زیدن انه زار بو زیدن الانه او قدن انه زار بو زیدن الانه او قدن رو بذاری توی کفه ترازو معادل است با انزار بن زیدن الان او قدر فقط اضافه اش اینجا مفید این شده که تنوین چی شده؟ حذف شده. آه. تنوین یا عوض تنوین مثلا بگم نهنو زاربا زاربان زیدن الان او قدر اینه که بگم نهنو زاربان زیدن الان او و این یشابه هل و یخال ای المزارع ای المزارع المزارع بدل یاد به بیان از درای یخال و یخال مفهول یشابه ای المزارع در چه چیز شباحت برسونه مزاف به یخال فی کونه هی مرادن بهی به الحال و اول استقبال و. در این که مراد به اون وصف و اون مزاف حال باشد یا بگیر استقبال اول استقبال حالکونهی حالکونهی رو نوشت که بگه چی؟ که وصفن حال است از برای مزاف حالکونهی وصفن در حالی که وصف باشه یعنی مشتق باشه مثل چی؟ که اسم یل فائله که اسم یل فائله ولی مثل اسم فائله و اسم مفغول انظار بو زیدن یا انظار بو رجلن الان او چه به معرف اضافه شد چه به نکره کسب تعریف و تخصیص بگید نمو کن انظار زیدن او رجلن الان او قدن رسازه ولی مفعول و سه فتر مثل اضافه صفت مشبده فعن تنکیرهی لایو ازنو این از تنکیره خودش دستفردار نیست این مضاف. سوا اون اوزی فعلا معرفته میخواد اضافه شده باشه به معرفه مثل چی؟ انظار با زیدن الان و قدر اون نکرته مثل چی؟ انظار با الان الانه و قدر ول میگه به چه دلیل میگی که کسب تعریف یا تخصیص بگید نمی کنه چرا لذالک یعنی و به خاطر همین همین یعنی چی زالج یعنی اینکه کسب تعریف نمی کسب تخصیص نمی کنه از نکره بودن خودش دست بردار نیست و لزاله به وصفه نکره تو. و به خاطر همین است که نکره موصوف این واقع میشه موصوف این مضاف. پس معلوم میشه این مضاف بگید کسب تعریف نکرده چون اگه کسب تعریف کرده بود صفت برای نکره نمیشد صفت و موصوف باید با هم دیگه چکار کنن مطابقت. کنن ولی زالکه و صفت بهی بهی نیخوره به این مضاف اضافه لفظی و سفر بهی ان نکره تو که مثال یا آیه از قرآن مثال میزنه حدیان بال غل کعبه الان حدین موصوف یعنی قربانن قربانیگی بال غل کعبه که این صفته داشته باشه چیه رسیده باشد به حرم خداوی کعبه بال غل کعبه اضافه شده بالغ به کعبه مفعولش یعنی حدین یبلغل کعبه وقتی خب بال غل کعبته صفت حین شده پس معلوم میشه که کسب تعریف بگی نکرده از الکربه اگر کسب تعریف کرده بود مطابق نبودند و صفت نمی‌شد آیش اینه یا ایه اللذین آمنو یا ایه اللذین آمنو لا تقتلوا السیدا و انتم هرومون یعنی ای مؤمنین لا تغتلو از سیده نکشید سید را شکار رو و انتم هرومون و حالا که شما چی هستید محرم و در احرام هستید احرام هستید. این کار رو نکن. خب حالا اگر یه کسی این کار کرد چی؟ میگه و من او من شرطی است. و من قتلهو من کن متحمدن و من قتلهو من کن متحمدن هر کسی از شما متحمدن حال است از برای فایل قتله هر کسی از شما از روی عمد و قصد این کار رو کرد سیدی رو کشت فجزاهو جزاش چیه؟ جزای شرط هایی فجزاهو ها جزای اون من شرطیه من او فجزا اون مثل ما قتلن فجزا اون یعنی فعلیه علیه جزاون فعل علیه جزاون علیه خبر مقدمش حذف شده پس برگرده اوست جزاء اون آه جزایی مثل ما قتله مثل ما قتله یعنی مثل ما قتلوا این صداش برگرده اوست جزایی مانند آنچه که کشته یعنی اگر فرض بفرمایید که مثلا خرگوشی کشته معادل حیوان اهلی خرگوش مثلا یک بزواله نگاه کنن ببینن مثلا فرض بفرمایید اگه کبوتری کشته معادلش یک مور فرد اون مثل ما قتله مثل صفت جزائی یعنی فعلیه جزا اون مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم نعم یعنی حیوانات اهلی جزای اون حیوان است از حیوانات اهلی که اون رو بخره و چکار کنه ذبحش کنه تا کفاره این کاری که کرده بشه منن نعمه یحکم الله یحکم بهی زوا عدلن حالا این که مثلا معادل خرگوش یا معادل مثلا روباهی که کشته یا معادل حیوانی که کشته چه حیوانی از احلی ها هست کی باید تشخیص بده میگه و بهی زواعدن حکم میکنه به این مثلیت آ به اینکه این مثل اون است کی حکم میکنه زوا عدل. دو تا آدم عادل دو تا شاهد عادل میگه و بهی زوا کو دو تا آدم عادل از شما حدیان بال غلی که ته. هدیین حال است از برای اونهای بهی یه و به این چیز دو تا عادل از شما در حالی که قربانی باشد ذبی باشد که رسیده باشه به قبطه. حدیان بال بالغلل. آیات رو و آیه رو خوندن واسه بوده که اقید یک مقدار شانه جمله تو ذهنتون باشه بعد هم خودتون مراجعه کنید بعضی از اینها رو اگر یه موقع تو ترکیبش و مطلبش تا اونجایی که لازم بود میگیم اگر گیر بود سوال میکنید جلسه بعدش ابتدا میگیم تا اینکه که آیات و شواهد برای شما کاملا مشخص شد حدیان بالقل کرد و نصب علال حال و ما میبینیم که منصوب شده بنابرا حالیت یعنی چی منصوب شده بنابرا حالیت؟ این مضاف اضافه لفظی خب حال باید معرفه باشه یا نکره؟, نکره؟ نکره پس بنابراین وقتی که این مضاف اضافه لفظی حال واقع شده پس معلوم میشه کسب تعریف نکرده و نصب علل حاله که مثال سانی اطفهی سانی اطفهی سانی از صنایسنی مثل رماین یعنی تا کرد جمع کرد صنایسنی یعنی تا کرد جمع کرد اطف یعنی گوشه لباس آیش اینه و من من یجادل فی الله و من الناس منه بعضیه یعنی تعدادی از مردم اینطوری هستند و ناس من ناس خبر مقدم من, من, من مبتدا مؤخر میگه تعدادی از مردم کسانی هستند که و فالله مجادله میکنن آ به گومگو میکنن در خصوص خدا و فللا به غیر علم این به غیره بدون اینکه علمی داشته باشن یعنی جاهلان حال است از برای فیل یا جاده. یعنی جدل می کنند در خصوص خدا جاهلند به غیر علم ولا خودن حطر به جای علمه بدون اینکه علم داشته باشن و بدون که هدایت از جایی شده باشند. ولا کتاب کتابمونیر و بدون اینکه کتاب منیر، کتاب آسمانی داشته باشن یعنی در رابطه با مسائل شرعی صحبت میکنن در خصوص خدا بحث میکنن هیچ چی ندارن همیشه هم تو طول تاریخ گرفتاری همچین آدمای آدم بوده سانیه اطفهی حال است از برای فایلی اجاده تازه سانیه اطفهی گوشه لباس خودش رو هم جمع میکنه یعنی چی؟ یعنی خیلی هم متکبره متکبرن کنایه است هکر پا رو دیدید آدم هایی رو که خیلی همچین پوز دارن کیف و دفتر و دستک رو گذاشته یک بنده خدایی از در میرسه چکار میکنه واسه قطعایی که اون میاد داره نزدیک میشه لباسشو جمع کنه تا مبادا او با اینها اتصالی پیدا کنه میگه ثانیه هدفهی خیلی هم همچین پر غباشو بالا میگیده کنار می‌کشه یعنی متکبرن کنایه از اینه که متکبر هم هست نه علم داره نه هدایت شده نه کتاب منیر داره اومده در خصوص یک مطلب عظیم صحبت میکنه که خصوص مسائل شرعی و دینی و خدایی باشه تازه خیلی هم حس میده خیلی هم متکبره کسانی اعت بهی که حال است از برای و دخل علیه ربه و ربه هم بهش داخل میشه به این اضافه چی چی؟ نفذی پس معلوم میشه که این چیه؟ نکره است چون ربه به چی داخل میشه؟ نکره موصوفه مثل میگه ربه تالل قرآن تالل قرآن اضافه اش اضافه, اضافه چیه؟ لفظیه که ربه بهش داخل شده ربه انسان ان تالل طوز صفاتم برای یک موجود مقدر نکره است و دخل علیه رب مثال میزنه کرب راجینا راجی یعنی امیدوار نام اخو رب راجینا یعنی رب انسان راجینا چه بسا انسانی که امیدمند ما بود امیدمند به ما بود امید به ما داشت راجی اینا عظیمه و عمله اینو و عظیمه عمل بگیریم که در شعر حرف عرف خوب داده تا اینکه که خودش پشه شاهد مثال یعنی رب و راجینا. یه مثال که راجی اضافه شده به چی؟ به مفعولش نام عظیمه و عمل یه مثال دیگه صفت مشبهه اضافه شده به چی؟ به شبیه به مفهول یا واقع تو اصل این بوده چی؟ عظیمن عمل هو مثل واضح المصاله عظیمن عمل اوهو بعد ها او امامهو اومده تو عظیم شده عظیمن عمل ألفلاب اومده عظیمن العمل بعد منصوب شده به عنوان شبیه به مفهول شده چی؟ عظیمن العمل بعد اضافه شده شده چی؟ عظیمن عمل مثل وازه المسالک محذب المقاصد اول سیدیه حسن الوج کریم العب در کتاب سمدیه رب بر راجینا عظیم العمل مروع و القلب میگه آرزوش هم خیلی بزرگه امیده به ما داره آرزوی خیلی زیادی داره مروع و القلب مروع و القلب یعنی چی؟ یعنی قلبش هم ترسانده شده هست میترسه که مطلبش رو بیان کنه مورف و رف و او یعنی خوففه او قلبش اینجا اسم مفعول اضافه شده به نام پولش اصلش چی بوده مرد و در قلب مرد و این قلب او مثل مهذب المراسه مورفه در قلب یعنی و مورفه در قلب قلیل الهیال این هم باز هیل جمع هیله این هم باز صفت مشبه است اصلش بوده قلیلتن هیله هیل هو قلیلتن هیالو هو بعد هوی هیالو هو اومده در قلیله مستطر شده تا شفتده شده قلیل هیل بعد الفرام اومده و منصوب شده شده قلیل الهیل بعد اضافه شده شده چی؟ قلیل هیل یعنی چاره و حیله برای کارش هم خیلی چیه؟ کم دستش هم به جایی بند نیست روب براجین هم عظیم العمله مرب قلیل قلبه ال... قلیل شعر رو دیگه ترکیب نمیخواد گفتم چی؟ مثالهو کروبه مثال اون کروبه خبر است برای مبتدای محصول بعد رب راجینا یعنی رب به انسان راجینا صفت اومده جای محصوب نشست عظیم العمل گفتیم دو تا ترکیب داره یکی که میتونیم عظیم العمل رو هم مربل القلب و قلیل الهیل رو هم همه رو صفت قرار بدیم برای اون انسان مقدر یعنی رب به انسان راجینا عظیم العمل مربل قلب قلیل الهیل همش بشه صفت برای کی برای اون انسان مقدر که ت گفتیم از نظر اعرابی بهتره که چی کار کنیم تا با قاعده ما جور در بیاد که بگیم اینا به هم عطف شدن تا هر کدوم از اینها ربه به طور مستقل بر سرش چیه؟ در بیاد چون معتوف در حکمه معتوفه نه, نه. بشه رب راجینا ربه عظیم الهمل ربه مروعه لقرب رب قلیل دیگه درست شو؟ و چند تا مثال زد چهار تا راجیناش اسم فاعل اضافه شده به مفعولش عظیم العمل و قلین الهیالش صفت مشبهه و اضافه شده به شبیه به مفعول یا فاعلش چون در اصل فاعل بوده به هنگام اضافه شدن تبدیل شده بوده به شبیه به مفعول و القلب اسم مفعول است و اضافه شده به نائب فاعلش پس بالا که گفت وصفا وصفن رو بالا تفسیر کرد به چی که اسم الفایله که اسم الفایله ولی مفتوله و صفت مشبهت از کجا داره بود از همین شعر بعدی درسته؟ کرب براجی نعظیم الول مروع الول به غلیل حیل وزر اضافت و اسمها لخزیتون و تلکه محزتون و معنویتون واوه واوه عاطفه چون مثالو بو کرد بر قبلش هم جمله خبری این هم جمله شمله خبر. زل اضافتو زی اسم اشاره است مبتدام عل اضافتو اسم معرف و بعد از اسم اشاره سه تا تکریب نه تو و بدل و عطب اضافه زل اضافتو اسمها مبتدام دوم لفظیتون خبر اسمها جمله اسم اور نفسیتون خبره زی، خبر, خبر مبتدای میگه این اضافه اسمش چیه اضافه نفسی و تلک ما و واطفه تلک مبتدا تلکه اسم اشاره مبتدا اشاره داره به اون اضافه دوره که اول ذکر کرد ها که کسب تعریف می‌کنه یا تخصیص و خصوص اولا ها و تیلکه محزتون و معنوییتون و اون اولی محزت است، اضافه است یا اضافه معنی. میتونیم می بگیم تلکم مبتدا داره محزتون و معنوییتون چیه؟ خبرش. میزنیم که بگیم زالکه زیدون، اون بابا زیدی. یعنی چی؟ یعنی اسمش زیدی دیگه نه؟ ها وقتی میگم انا من امرم، من امرم. یعنی چی؟ اسم. یعنی اسم من تلیکه مهزتون و معنویتون اون مهزه و معنوییت است یعنی چی؟ یعنی اسمش اضافه مهزت و اسمش اضافه معنوییت است. این یه ترکیب. ترکیب دیگه میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم مهزتون و معنویتون خبر است برای اسموها مقدم که به قرینه مسیح اول دادیم میگیریم یعنی و تلیکه اسموها مهزت و معنویی. عدو اسم آم محزت و معنویات جمله بشه خبره تلج هم موقع دو تا به یه شکل میشه ایرادش درسته ها هر دو ترکیب درسته بریم ببینیم ملا جلال چه کرده درست شو میگه وزن اضافه تو و این اضافه بهیه اضافه المسفه الا معموله و اون هم اضافه وصف است به معمولش ببینید نمیگه مفعولش چون گاه یغات اضافه میشه به فیلش مثل سف مشابه.گاهای اوغات اضافه میشه به نفایلش مثل اسم م گاه یغات اضافه میشه به مفولش مثل اسم فیلش همه اینها معموله برای وصل لزم میگه اضافه وصل به سوی معمولش، اسم ها رافزیتون اسمش چیه لافسیگی است. لله ها افادت تخفیف زیرا فا ای که میکنه چیه تخفیف لفظ لفظ رو تخفیف میده. امم لفظش کار میکنه تخفیف میده. شما میگید حسنون وجهه اصلش بوده چی؟ حسن و شما یه دونه زمیر رو برمیدارید که اسم و به جایش چی میگذارید؟ یالفلام و رو مستتر میکنید و اضافه هم میکنید. اضافه هم که میکنید تنوین چی میشه؟ نه میشه تخفیف حاصل میشه وقتی میگه زار با زیدن نون چی میشه حاصل میشه اقواد تخفیف النفس به حصف تنوین به حصف تنوین اوه نون یا به حصف نون. یا تنوین رو حصف میکنه یا نون رو تنوین مثل چی؟ انزار با زیدن الان او قدر نون مثل چی؟ نهنو زاره با زیدن <تصفيق> یا نهنو زاره بو زیدن الان او و تلکه و اون دوره اون دوره کدوم بود؟ وحیلتی توفید و تعریفه اوه تخصیصه اونی که افاده میکرد تعریف رو یا تخصیص رو ببینید گفته چی؟ اسمها؟ اون دوره اسمش چیه محزه است چرا بهش گفتن محزه؟ چرا بهش گفتن اضافه محز؟ میگه محزه یعنی خالصه اضافه خالصه میگیم چرا خالص میگه به دلیل اینکه نیت انفصال توش نشود ها خالصتون اون و معنوییتون ايضا بهش معنوییه هم میگن چرا لعنه ها افادت امرن معنوی زیرا افاده می کند امره معنوی هست خالصه بش میگن چون خالص هست از نیت بگید امفصال. نیت انفصال بینشون نیست بلکه الموزاف و الموزافلن کل کلمت واحده شدن مثل اضافه لفظی نیست که انزارب و زیدن بذاری توی کفه با انزارب و زیدن یکیست. نه اینطور نیست اولی کس به تعریفی و معنویه میگن چون افاده امره معنوی میکنه امره معنوی چیه؟ از تعریف اول تخصیلیست پس گفتش که اضافه لفظی چی رو میرسونه؟ تخفیف لفظ رو تخفیف لفظ به چی؟ به حسب تنوین و گفتش تنوین هم ببین به حصف عد تنوین یعنی همون تنوینی که قبل گفتیم تنوینی که قبل گفت چیه؟ یا تنوین ملفوظ بود ها یا تنوین مقدر مثلا تنوین ملفوظش مثل انا زاره و زید الان او قدر تنوین مقدرش مثل چی ان تنن ان تنن زوار زید ان تنن زوار و زیدن, زیدن. الان او قدر الان زوار بو زیدن اضافهش اضافه چیه؟ لفظیست و تنوینش چی شده؟ مشخصه؟ انتو نه زوار بو الان و نون هم که مثال زدم زار با زیدن و زار بود زیدن و کلی که یلتی توفید و تعریف و تخصیص اسمها محضتون ای خالصتون ان نیت الانفصال و معنویتون عزیزان در نهایتا افادت از عمل معنوی ای از تعریف او تخصیص خب وقتی اضافه لفظی افاده چی تعریف یا تخصیص نمیکنه و در نیت انفصال هم هست در نیت انفصال هم هست پس این اله افلام هم اگر داشته باشه اشکالی توش اله حسن و بچه اشکالی نداره تو نیشه دستورات درست یادتونه اله حسن و بچه اله دار باشه اضافه بشه به چی؟ به اله دار اشکال نداره. یا اله دار باشه اضافه بشه به چیزی که اله افلام نداره ولی او اضافه شده به چیزی که دارایه اله افلامه مثل اله حسن و الحسن و وجهل حسن اضافه شده با الفلام به وجه واسه الفلام نداره اما وجه اضافه شده با الفلام دار یعنی الهم درسته؟ و ولی اگر الفلام داشته باشه به نکره به چیزی که الفلام نداره چه معرفه چه نکره اضافه؟ نمیشه حسن و وجهل گفتیه؟ بله پس میگیم اضافه لفظی میتونه داره الفلام باشه چرا چون مفید تعریف یا تخصیص؟ نیست بلکه نیّت انفصال است ولی شرطش اینه که اضافه بشه به چیزی که داره الف یا اون مضاف الیهش اضافه شده باشه چیزی که داره الف ولی اگه مضاف الیهش نداشته باشد مطلقا غلط است از زار بزیدن غلط ها از دار بزیدن چیه غلط و از طرفی هم از دار رجولن هم جهد شهر و وصل و ان واب وصل مبتدا اضافه شده به علم. وصل و ان متعلق به وصل المزاف یک از اوست ستو ترکیب نه بدلت باید وصل شدن لام به این مضاف زل مزاف اسم اشاره نزدیک به کدوم بود که دوم گفت اضافه نفسی به زل مزافه مقتفرون مختفر یعنی چی؟ بخشیده شده وصل شدن مختفر خبر وصل است وصل شدن لام به این مضاف بخشیده شده که انوصلت بسانی اگر متصل بشه الفلام بگید بسانی چسبونده بشه الفلام به سانی, سانی منظور کده مره مضافن کلجد کل شعر یعنی مثال وو کل جد شعر. جد شعر الجد و شعر مثل چیونه یعنی الجد و شعره جد یعنی فرفری شعر یعنی مو میگیم حسنان یا زیدن الجعدو شعر زئ موی فرفری داره اصلش چی بوده الجعدو شعر و شعرهو. بعد اون موارد صورت گرفته شده چی الجعدو شعر حالا ان ان شعتیه وصلت فعل ضمیر نائب فاعلش به کی می‌خوره زمیر به الفلام این الفلام به ثانی متعلق است به وسلت زمیر نایفاهه به ثانی متعلق به وسلت این جمله وسلت به ثانی میشه چی؟ فعل شرطه این جزای به قرینه ماغع هست, شد. هست شده که میگن دلیلون جزا. اگر متصل شد چسبانده شد الفلام به دومی مانند کل جهد شد فقط به دومی او او یا عاطفه، به لذی به جای ثانی است یعنی یا به دومی حال افلام چسبیده باشه یا به لذی یا به چیزی که لهو اوزیف از ثانی لهو جار مجرور متعلق به اوزیفه و آهد سلام هست از ثانی نایفایل اوزیفه است و این لام به معنای ای اله اینجا، اینجا مثل و سغناه لبرده چون اضافه با چی رو میشه شه اله مضافن اله میگه میگه او به یا متصل شده باشد به چیزی که اوزیف از سانی اضافه شده است دومی یعنی مضافن اله اله به سوی او یعنی خود مضافن اله اضافه شده باشد به سوی او یعنی اون مضافن اله دومی باشد و دارای الفلام یا متصل شده باشه الفلام به چیزی که اضافه شده مضافه نلیه ما به سوی او مثال بزن یعنی مثالهو کرد کزه میشه خبر مبتدای منصف یعنی مثالهو کزیدون مثالش مثل زیدون مبتدا از زاره بو رأسه جانی زید است که از بو میزند سر جانی و جنایتکار با از زارب اضافه شده به رس رس دارای هل نیست ولی رس اضافه شده به چیزی که دارای هل افلامه هل جانی از زارب چیه؟ و چون اینجا اسم فائل دارای هل دیگه نیازه به این که به منحال استقبال رو, رو شرط کنیم هم نیست چون وصل اگر به معنای الفلام داشته باشه دیگه این معنا شرط نیست. و وصل و عل به زل مضافه لفظی لفزیتن و وصل الفلام به این مضاف اونم لفظی لفزیتن اضافه لفزی مختفرون مختفر است این وصلت الفلام به ثانی یعنی به مضافه ایلع. کل جهد شهر او وصلت این به لذی رو میخواد بگه عطف از به جای بستانی او وصلت به لذی لحو سانی که زیدون از زارب و جانی شد؟ دو تا حالا چنده شد؟ دوتا مولاس الان میخواد بگه فقط این دوتا نیست جای دیگر هم هست چون کم بوده مصنف ذکرش دیگه اونو نکرد او به ما یعود و الای یا به آنچه که عود می کند به سوی چیزی که دارای الفلام است. این علیه رو ب... یعنی چیزی که دارای الفلام. به ما یعود یعنی به آنچه که عود میکنه چه چیزیه که عود میکنه زمیر دیگه یعنی متصل میشود اضافه میشود به زمیری که یعود و علیه عود میکند به سوی او به ما حتف به جای به ثانی یعنی انو سلت ال به ما اگر متصل بشود الفلام به آن که یعنی مرجع زمیری که یعود و زمیر اله زمیر به سوی او چیه؟ او امکان زمیرم خودش میگه اگر زمیر باشه کمافت تصحیم به ما حتی پس به جای به ثانی شد؟ امکان از همیلن کمافت تسهیل همونطور که میگه اینو بسیل خودش نگفت میگه تو کتار تسهیلش گفته که مرد تو رجله و رجل و شاتمهی. الان از شاتم اضافه شده به چی؟ به زمیر اشکال ندارد چرا؟ به اینکه اون زمیر برمیگرده به چیزی که دارای الفلام کدوم؟ از رجل مرد تو بزاره به رجله و شاتمه و؟ منع المبرد و حاضری مبرد این صورت رو قبول نکرده گفته درسته که شما میگید هرچی که به هلفلام دار برمیگردد در حکم هلفلام است. در حکم اسم دارای هلفلام است. ولی ما این قبول نکرده اینا گفتن زمیری که به چیزی که هلفلام داره برمیگرده مثل خود همون هلفلام داره است. مثل محلهای به هلفلام آی مبرد میگه خیر. این قبول نکرده من المبرد و, و حاضی فررا اومده بقیه معارف رو هم بر زمیر چکار کرده ریاز کرده یه پایه بالاتر گذاشته ما گفتیم زمیری که به محلای و الفلام برمیگرده مثل خود محلای به الفلام میتونه مضافه نلعی بشه مبرد اینو قبول نکرد فررا اومده بقیه معارف رو هم برش چکار کرده بلی زمیر ریاز کرده و جغو از الفررا اضافت مافیه ال الال معارفه کلها قیاسن که ازداره بکن ازداره با زیدن به زمین اضافه بشه مخاطب یا به علم اضافه بشه ازداره با زیدن به خلاف ازداره با رجوله نکره رو دیگه آقای فررا قبول نکرد و قد استعملهو علی امام و شافعی فی خطبه رسالته و آقای امام شافعی ها این یک نفر از ائمه چارگانه اهل سنت این مورد آقای فرار رو استفاده کرده استعمال کرده در خطبه رسانش برگشته اونجا اینطور گفته فی خطبه رسالتی فقال اهل جائلونا فرض کنید الجائلونا صفت اندام اهل جائلونا یعنی قرار دهنده ما را حالا الجایل اضافه شده به چی؟ به نا و زمیر قایبی که به الفلام برگردد به کیل؟ نیست الجایل و نا طبق قول فررا گفته من خیر امت اخرجت در ناست یعنی خدایی که قرار دهنده است ما را از بهترین امتی که این صفت رو داره اخرجت در خارج شده است به نفع ما رو بهترین امت قرار داده. به خاطر این که به معروف و تنها و الامر منجب امر به معروف میکنید و نهی هست منجب پس برابر این یک مورد رو هم به ما یعود و علی آقای ملا جلال اضافه کرد و اختلافاتی رو هم در این زمینه نقل مسال الله و محمد